نسادری و اسرلیه و خلوغه تتم لسان يفقه قولی مسلمانای محترم درس دوم از درس‌های گناهشناسی است در هفته گذشته ما شما در سوال خود درباره گناهشناسی خواندیم که گناه در لغت بود واجی که در قرآن از مشان گناه و کدام الفاظ استعمال شده بود دریافت درس ما درباره گناه در استیلا هست یعنی در شریعت اسلامی چی را ما گناه میگیم در استیلا شریعت اسلامی گناه را ایتو تعریف میکنن که عبارت از ترک نمودن قصدی اوامر الهی و انجام آن در شریعت اسلامی از آن ممانعت شدن که ای در حالات مکلفیت شرعی انسان باشد. تارک نمودن قصدی اوامر الهی و انجام آن چی در شریعت اسلامی از آن ممانعت شده در حالات مکلفیت شرعی انسان خب این تعریف تشری این قسم میشه که بسم الله الرحمن الرحیم اول کلمه تارک نمودن است خب اوامری که در شریعت اسلامی شده که انسان مثلا فرایز است واجبات است سنن است مستحبات است حتی مباهات یعنی اگر کسی یکی از این امور ترک میکنه بناهن ای در جمله گناه حساب میشه در قسمت دوم گفته بود که انجام دادن ممنوعات به میشکل در شریعت اسلامی بعض از امور گفته شده که اینا من هستن خب در اوجه نحیه یا من آمده اگر کسی یک کار را که از اون منع هستن انجام میده در این صورت ای هم از نگاه شریعت اسلامی گناه حساب میشن کلمه قصدی ای گفتن که بعضی از امور است که انسان او را سهوان یا خطا آن انجام میدهند او در جمله گناه حساب نمیشه بلکه اصلا گناه در شریعت اسلامی به چیزی گفته میشه که انسان او گناه را به شکل قصدی میکنه ما شما احادیث داریم مثلا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم به وما استكره عليه حدیث نمبر 2034 کتاب الحج سنا ابن ماجه در این حدیث شریف ما شما می‌بینیم که پیغمبر سالسلام میگه که خداوند مطال تجاوزل امتی یعنی بر امت ما عفو کرده یا بخشیده اما توسوی سو بیه ها مالم مالم تعمل بهی احیانا انسان شیطان در دل انسان بعضی از مسائل میپرته و ای وسوسه های شیطانی تا وقتی که انسان به او عمل نکرده و او را در بین مردم اظهار نکرده وقتی که در دلش میباشه اعوذ بالله من الشیطان جیم میگه از این خاطر میگه خداوندی عفو کرده بمیشکل و مستوک ریه علیه یک کسی یک گناه را به اختیار خود نه بلکه بالایش تحمیل میشه وقتی بالایش تحمیل میشه اینی اینی های تحمیلی هم بالای امت محمد صلی الله علیه و سلم عفس بنا در حدیث شریف دیگه است که حضرت ابی ذر غفاری رضی الله تعالی او روایت میکنند قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تجاوز عن امتی الخطا والنسيان وما استكره عليه حدیث نمبر دو و سی و سی، کتاب الحج سنن ابن ماجه در این حدیث شریف میگه پیغمبر سامیه که, که، این الله تجاوز آن امتی خداوند اعفه کرده امت مرا از چی؟ الخطا یکی خطا هست که در فارسی ما و شما خطا اشتباه را میگیم و النسیان در فارسی را فراموشی میگیم و مستوکری هو عليه و امور که بالای زنا به شکل اجباری تحمل شده خب علما فرق بین خطا و نسیاناتو بیان میکنن که خطا مثلا در ماه مبارک رمزان بسیار خوبتری دادم میتومن خطا هوست که انسان مثلا روزه به یاد داشته باشه ولی از پیشش غذای خورده شده یا آب نوشیده شده مثلا انسان میفهمه که روز است صبح از خواب میخیزه دروازه بسته است کلکینون پرده داره ما صبح تا بخوان و اگر کسی بعد از نماز صبح درس بخوانه مطالعه بکنه حفظ بکنه یا هم تو درس بخوانه این که پنج بجه تو با بخیزی و نماز صبح تا بخوریم تا ساعت هفت اشت بجه مغز تو کاملا آماده درس خواندن است و واقعا وقتی که ما همی اسلوب پیش گرفتیم هم نماز ما قضا نشد هم جماعت می میتانستیم هم صبحی که میخواستیم هوای تازه اکسیژن بسیار صاف ستره درس میخوادیم باز نماز صبح تا اف وجه کل اگه بودن و درس ما بسیار مؤثر بود و میتانستیم که حتی نمره خوبه بگیریم اما اگر انسان خواه میکنه با وقتش لیکن وقتی که خواه است اینجا پیفن بس سلامه ای که الروفی عن امتی الخطأ این الله ببخشن روفیه را ما یک وقت یاد گرفتم لیکن ما که احادیث پالیدم در متون روفیه نیافتم ای یافتم که ان الله تجاوز عن امتی الخطأ و النسیان و مستوکریه علیه بود و حدیث شریف دیگه بود که أن عليٰ رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "أرفي القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. برایم کسی در عالیت خواب است اینجا ملاکه ها از رو چیز نشتن میکنن. و عن الصبي حتى يشبه و همچن از تا وقت که جوان شو، یعنی تا وقت که انسان با سن مكلفت و جوانی نرسیده سرزم کلام از او برداشته شده. و عن المعتوه حتی عقل همچنان از دیواره تا وقتی که ای عقل خدا دوباره اعاده بکنه حدیث 1343 کتاب الحدود عن رسول الله صلی اللہ علیه وسلم سنان ابن ماجه این حدیث شریف بود بناهن مسئله قصد و مسئله مکلفیت شرعی انسان اینجا مطرح هست که از نگاه شریعت اسلام انسان تا وقت مکلفیت ندارد تا وقتی که جوان نشده از این خاطر اگر یک طفل گناه میکنه بازگی در قانون است که اینا باز حبس نمیشن بلکه اینا را دارو تعدیب روان میکنن دارو تعدیب جایی که اونجا عدب یاد بگیره و حتی بالا از اینا حدود دیگه پا تطبیق نمیشه تا وقتی که بسن جوانی نرسه ولی مسئله سن جوانی یکی است که مثلا نظام های اروپایی رسن عجده یا ایگرپا تاین کردن ولی از دیدگاه اسلام جوان با یک مثلا که جوان میشه این سن مشخص در اسلام ندارم. در اسلام قایده مشخص دارن چه وقت انسان جوان گفته میشه؟ اینال کشورها فرق میکنن در کشورهای گرم سیر احیارن در سن یازده و دوازده بچه ها جوان میشن و دخترها حتی در سن ده سالگی و نو سالگی جوان میشن در سنها منطقه گرم سیر در منطقه سرد سیر که اینجا شاید در 15 سالگی و چارده سالگی هم زود جوان نشه بناهن در اسلام جوان وقت انسان مکلفیت پیدا میکنه که اونمو به سر نو جوان بفاهمه که ما جوان شدیم بفاهمه که ما بالغ شده ام. او علاماتی داره علاماتش مثلا وقتی که ریش و بروتش میبراه و مثلا احتلام احتلام میشه و از خانم ها مثلا وقتی که هایزه میشه اینی وقت خود از اونا میفامن که ما جوان شدیم و وقتی که یک جوان بفهمه که ما فیلن جوان هستم اگر اگرچی دیگران نفامن او باز مکلفیت شرعی پیدا میکنه سرش تمام احکام نماز و روزا و یا سرش فرض میشه نشه من بعضی کساس مثل چین وار مردم های چین هایین در سی سالگی و سی پین سالگی ریش نمیکشه تو نمیشه که اگه نفر باید من ریش را بال نکشیدی من جوان نیستم او با اون شکل نیست بلکه مردم های و اندونیزیا که اما هم سنفیه ما از مالیزیا بودن از فلیپین بودن خرد خورد, خورد بودن و قضایشان هم خورد است و ریش زود بذمه فکر کنیم شایدی 15 سال باشه، 16 سال باشه، وقتی پوسانش میگم میفهمیم از سال استم. یعنی ریش و بسیار سختی یک دو سه تا را این سالگی میبره. اما جوانی ازنا باز یعنی علامات و دلایل داره. خب ما که مکلفیت شرعی چی هست؟ مکلفیت شرعی اونم که انسان وقتی که پیدار باشه، وقتی که جوان وقتی که باشه مثلا احیانا مکلفیت شریع انسان در حالت مخمسه مخمسه چی را میگن؟ مخمسه ایست که انسان در یک دشت میره و در دشت نزدیک از گشنگی حلاک شود. اونجا باز علما گفتن که در این حالت آب هم نیست، غذا هم نیست آب یاف میشه شراب غذا یاف میشه خوک یا گوشت خر اینجا میگه باز مکلفیت انسان می باشه که از او چیز حرام میتونه استفاده بکنه به اندازه که خدا از مرگ نجات بده نه تو که مثلا شکمسیر یک روان خرق مکمل بخور این قسم نه بلکه اگر میتونه یک اندازه که خدا از مرگ نجات بده این حالت حالات مخمسه میگن. مثلا بعضی حالات سر نابینا مثلا نماز جمعه مریض از بعضی از مسئولیت ها معاف مثلا وقتی که انسان مریض بود مکلفیت نداره که استاده استفاده شده نمیتونن استاد نماز خواندن نمیتونن دین اسلام دین آسانی است ما اسلام بسیار بر خود سخت ساختیم بعضی کسایی هستند که از اسلام خبر ندارن فتواهای بسیار سخت می که مردم ایوازی که به دین تشویق بکنن او را از دین متنفر می در اسلام حرج و در اسلام سختی نیست آسانیست یستی رو ولا توعصی رو قیلنبر سامه یکی یستی رو آسانی بکنید بر مردم ولا توعصی رو سختی نکنید و رو و مردم رو بشارت بتین ولا توعصی رو و مردم از اسلام متنفر نسازین آسانی اسلام دا است که اگر یک نفر سر پایتادار پنج بنای مسلمانی فرض است سر غریب سه بنای مسلمانی فرض است سر, ب... سر فقره ما بسیاری وقتا بیم سر هر کس پهند برای مسلمانی فرض است از این خاطر یک نفر بیمینی که خوار از غریب از نان و شب و صبح و خدا نداره تمام روز بر خانه خود کچالو داده و جووری جوشک داده نفس از رو کشیده دیگه رو سهل میکنی کجا میری اش میرم او خانه پرپلا و سر تو کی فرض است تو نفقی فامیل تا نداری تو صبح جای نداری. ولی خانم مریض است پشت دکتر برده نمیتونی میشن؟ خانوم پشت دکتر برده نمیتونی؟ نه فقط که سرت فرض است او رو دادن نمیتونی؟ خانه که سرت فرض است باید خانه درست داشته باشی تمام روز خانومت رو داخل کرای میبریم اونجا مردای نامحرم و کجا میریم؟ و حج میریم. سر تو که فرض است. انال سر غریب سیمای مسلمانی است. چون دین اسلام دین آسانی است. سر پولدار و پیستدار پنج بنای مسلمانی است اما دروازه را پیش کنین وقتی که چیز میکنید خواه اینال سر غریب سه بنای مسلمانی است پس در افغانستان بسیاری کسان نمی وقتی که نمی از احکام دین مقدس اسلام از او خاطر سر خود دین سخت ساخته رفته اینال وقتی که انسان استاده شده نمیتونه لا یکلیف الله نفسن الا و لا یکلیف الله نفسن الا و سعاها مانایشی است که انسان مکلفیت نداره مگر به اندازه وسط توان خود پس کسی که توان حج رفتن نداره سرازو هیچ حج فرض نیست کسی که توان زکات دادن نداره سرازو هیچ زکات فرض نیست یک روز یک جایی ما مسئله گفتم گفتم لعنت الله علی الراش والمرتشی و الله خب لعنت خدا سر رشوت خب پیغمبر هم گفته و رشوت دهنده خوبی آخر زمان است نام رشوت عالم میمانند پیدا و پنا نام رشوت میمانن توفه نام رشوت میمانن مثلا شیرینی بنا ان ما خستم دموجه گفتم گفتم لعنت خداست پیغمبر هم گفته که سر رشوت خور کسی که میگیره والا که 20 رو بگیره لعنت خدا سرش و لعنت ترد از رحمت خدای عزبجل است. و کسی که رشوت میتن بسیاری کساست ولو من هج میرم گفتم نفر هج باز با مو کارمندش یک بودم باز من رم هم هم دوم بگیره اما تو اینجا پیش از اینجا هج میری سرت لعنت خدا رو نازل کردی از رحمت خدا خدا مطرود ساختی یک کسی می شما، درس میتین مقتضای حال مراعات نمیکنین بود در بلاغت یک تعریف است که گفتن کلام مطابق مقتضای حال او رو بلاغت میگن ایسای بال در رشوت ها مقتضای حال پیدا کردن سرما انتقاد میکنه میگه استاد وقتی که شما این مساله رو او روز گفتین و در مزید بر کل مردم بیان کردین چون او به چارک داره شورت داشت بنامه رشوت خور آنه اثر ازر تقاضای رشوت میکنه مثلا رو میکنن؟ مثلا تو قضا را میکنه گفت اگر من شوط نخورم آیا برای بچه خود در علام شام پاریس عروسی بکنم اگر من شوط نخورم حج رفتم میتونم خب علی خود علی فرض خو نیست که تو باید عروسی بچه‌ت در شام پاریس بکنی گفت حالا و جانم مقابل قبول نمیگنه خو الخبیسات وللخبیسین الخبیزاتو وقتی که انسان خبیز بود خسروخیلش هم خبیز است تا وقتی که برش دول سرنای نبیره، نبیره و سرنای نبیاره آروسیش هم نموند تیز اما الطيبات للطيبین این خواهیات قرآن است پس اگر تو طیب و پاک هستی خداوند برات زن را نصیب میکنه که خسروخیل خودش مسلمان است و متدین است خودش میگه که برادر این کارا را نبیره. اینال در دین مقدس اسلام احیانا مثلا گفتیم که مسئولیت ها کسی که استاد شده نمیتا نه سر از جبر نیست که باید حتما استاد شده و نماز بخانه وله استاد ما او نمی نماز خانم در ختم استاد بودم همین پایم بیخی دیگه تو میخ بارم همونتو بود که میخ, میخ میخ میخ میخ میخ آل خداوند متعال براتو مریض استی اجازه داده که اتا روزه رو بخوری. برای برای برای او کس که روزه گرفتن نتونه تا اجازه است که روزی خدا افطار بکنه و باز اگر جور نمی شد بیخیر تو مرضش مزمن بود که هیچو مرضی از و جور شده نمیتونه در مقابل از فدیه هست پس تو چرا از او سهولت هایی که خدای عزوجل بر ما از او استفاده نمیکنیم پس تو چیز جبر است که تو اساله شده نمیتانی خداوند خودش اجازه داده که کسی که مریض است صد شده نمیتونه نشسته بخونه وقتی یک نفر نشسته نماز خواندنم نمیتانه به پهلو افتاده نماز بخانه یعنی ای سهولت هاست و مکلفیت انسان به ای, ای چیز نیست مثلا بعضی خانم ها هستن که از بعضی از مکلفیت ها هستن خب آلمیه ایم در اقسام گناه گناه چند قسم است. قسم اول گناه به اعتبار نافرمانی علمه گناه را تقسیم کردن انو اگر ما گناه را به حساب نافرمانی خداوند تقسیم بکنیم اینجا گفته شده که لا تنظر الى صغر المعصیه ولكن انظر الى من عصایته. وقتی که گناه میکنی اینجا در نظرت باشه که پشت ازی نگرد که ای گناهی صغیره هست و یا گناه کبیره هست فلسفه زیر پیدا نکن لا تنظر الی صغر المعصیه به طرف خوردی گناه سیل نکو. به طرف ذات سهل که تو او نافرمانیشه میکنی اینال اگر انسان ببینه که م گناهی را انجام میدم و در او گناه مخالفت حکم خدای عز و میکنم در حقیقت انسان از سغایر هم دوری میکنن اصحاب کرام چی عادت داشتن؟ عادت اصحاب کرام ای بود که یک گناهی که به اندازه سر سوزن می بود او به اندازه یک فکر می کردن. چرا؟ مگناه به اندازه سر سوزن کردم لیکن نافرمانی کی کردم؟ نافرمانی ذات خدای از زوجه لکردم و انسان های منافق شیادت دارند که اگر گناهش به اندازه یک کو هم باشه برازو دلیل پیدا میکنه سند پیدا میکنه روایت پیدا میکنه شیطان اینمی قسم که ما شما عالم و جاهل و فیلسوف و داریم شیطان هم متخصیصین دارن بر عالم شیطان عالم رو میکنه برش مساله پیدا بکنه و او را به گناه وادار بسازم. اگر بر جاهل شیطان جاهل میره بر عالم شیطان عالم میره و بر فیلسوف شیطان فیلسوف میره تا او رو با فلسفه از دین دور بسازند. علم علم در اسلام در سابق در منطقه ارستو و ارستاتالیس ما میخاندیم که حصول و صورت فی ذهن این علم میگفتن وقتی که تصویر یک چیز در ذهن تاوردی یه علم است در اسلام آتو نیست این منطقه سقراط و ارستو فعلا، یک شانزاپولی هم ارزش نداره ولی متاسفانه در مدارس ما باز همون منطقه از بینرفته از اونا تدریس میشه و شاگردای ما تمام روز در کلی و و به ایگفا و مسروف هستن حصول صورت شعیف ایمان ایمانای زیر که وقتی این ورقا را من کلش از ذهن خود گرفتم و اصابه ای طریف ما عالم شدم اینالا اگر ای تاریف ما قبول بکنیم کامپیوتر میگه از تو کد اخو تر هستم من مثل ازی ورقه ها رو در ذهن خود پنج هزار ده هزار ورقه دارم پس تو جاهل هستی ما علم هستم ای تاریف با آمدن اسلام گلمش ورداشته شد جاهل کی هست جاهل او کسی نیست که علم نداره ما مثلا عصری که پیغمه سامده قبل زور عصر جاهلی میگیم اگر امروز امر اول قیسو زهیر بن ابی سلمار از قبر بخیزانیم و معلقات خدا بگوین و در از هر بر از واد داتا دا دکتورا میتن در لغت سئمت و تکالیف الحیات و من ثمانین حولا لا ابا لکا یس وقد وقت اعلم ما في اليوم والامس قبله ولكنی عن علم ما في غد عمی حال وقتی که شیرهاییست که اتا بسیاری کسا ایره ترکیب کردن نمیتانن بسیاری کسا ماناییز ایره درست نمیفامن لیکن او رو چرا اصر جاهلیت میگیم خاطر ازی که علم در اسلام و جهل در اسلام فرق میکنه از او تعاریفی که عرستو و سقرات و افلاطون میکردن در اسلام علم چی نور نورون یقذفخ الله فی قلب المؤمن نور است که خداوند او را در قلب انسان مؤمن داخل میکنه بنا اگر یک کس تمام کتاب ها را بخانه و تمام علوم یاد داشته باشه ولی قلب از او و علم از او وسیله به هدایت و خداشناسی از او نشد او در اصطلاح اسلامی جاهل است شما میبینن یک مستشرق است به نام مستشرقین خاورشناسا ها کسایی هستند که در اروپا و آمریکا در علوم اسلامی تخصص میگیرند مثل یه قرآن پاک که با شاگرداش مثل غوث و ظلمه و قاری مشتاق ناتخان است چه بلاسوز بازیامن ها یا دنبای هستند اصلا خود فیل اونجا هست دنبش دا اینجا هست اینال او بردم های که بنامه مستشرق هستند یک مستشرق از بنامه لامانت و یک مستشرق دیگه از بنام ماسینیون ماسینیون میگه میگه اگر در جهان امروزی بگردی از لاماند کرده کرده شرق شناس و اسلام شناس هیچ وجود نداره یعنی لاماند در شرقشناسی شناسی و در اسلام شناسی جوره نداره بسیار عالم است تمام تفاصیل و تمام فقه و تمام روایت دارن ولی باز امی ماسینیون میگه میگه باز از لاماند که خبیستر در دنیا هم وجود نداره اما عالم کلیگیز و هم خبیستر از کلیگیز چرا علم در دل زنت یار شود علم در سر زند ماره شود امروز گرگک های بچه های خوردخوردی وقتی که دوزی میکنن طفل ماسوم و گردی از او را قطع میکنن و میبرن به یک انسان بزنسمند افتاد پنی سال نزد میکنن این انسان جاهل کردن نمیتونن این انسان حتی دکترای مایی کارهای بسیاریش کردن نمیتونن او بسیار داکتر متخصصه که او میفهمه که کدام رگها را قطع کنی و را دوباره با دوباره. نفر رو دیگر پیوان کنیم ای رو دان می کنا. یک انسانه که با تکنولوژی ماسر بسیار خب اطلاع داره ای کاره میکنه لیکن چرا و عالم و دانشمند ای کاره میکنه؟ میگه به خاطر ازی که علم از کجا زدن علم اگر در سرزند ماری شدن پس علم از اینا علم مانند علوم لامانتو، و ماسینیون و غوث ظلمی و قاری مشتاق اگر شیاخو بچاره در جمله علمان نیستن لیکن ولو که چهار کلمه هم یاد داشته باشه اینا علم از اینا از در جامعه که اینا ایواز ازی این که اصل تقسیم کنن در بین اصل زهر میپرده و با مردم تقدیم میکنن اینال اینجاست که این انسان ها جاهل گفته میشن در اصطلاح اسلامی اما یک انسان است که بسیار علمیت کم داره دانشش کم است معلوماتش کم است، لكن نور يوقزه الله فی قلب المؤمن، خداوند نوره در قلب بی انداخته، بنائی با علم کم خود یک تا پرست است، خدا پرست است، میفهمم که مرا خدا پیدا کرده، از این خاطر لا تنظر الى صغر المعصیه، به گناه نظر نمیکنه، بلکه میفهمم که وقتی من گناه می کنم در مقابل خدای عزوجل نافرمانی میکنم. وقتی کس نماز نمیخوام میفهم که ولاد بیبی شیطان به بی یک امر خدا را قبول نکرد و این انسان مسلمان که خدا مسلمان میگیره دوچند شیطان گناه میکنه شیطان سجده احترام به آدم نکرد لعنت خدا سرش نازل شد انسان مسلمان سجده به خدای عزّا و نمیکنه پس ایت دو گناه مرتکب شد به احترامی امر خداوند و سجده نکردن به خدای عزبجل پس ای شیطان است شیطان گشته یک وقت در سر خانه سعید کیان بود که کی بود میگه تو شکر کرده بود پدام کس سر در دروازه خود میگه کدام عالم رفته بود نشته کرده بود که اینجا جای پرزدن جبریل نیست اینجا جبراییل هم پرزده نمیتونه در خانی من بازی شاعر بود که فرعون گشته ای مگر رود نیل نیست فرعون خود شدی خود آل موسیٰ علیه السلام رود نیل نیست ازی خاطر انسان به اعتبار به اعتبار نافرمانی خدای ازا وجل گناه سغیره و کبیره ندارد هر گناه به نظر انسان باید یک کوه جلوه بکنه که اکو ده بالای شان است اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم ببینن کسایی که علمشان در دلشان نیست علمشان در سر زدن عالم است میخیزه درس میدم در بین دست خود هیچ کلمه رحمت از دانش نمبراید لعنت سر فلان لعنت سر فلان لعنت سر فلان استغفرالله اهل عظیم تو شیطان گشتی یک نفر بود تمام روز بگیر لعنت به شیطان, شیطان. که سادم شد لعنت به شیطان که میشد. او یک جی ایک بود عالم بسیار و سادم بود باش گفتی چی مال تو چی شیطان رو گرفتی <تصفح> <تصفح> میگه انال خودت دیگه رو شیطان میگردی اذا تكرر کلام على اللسان است تقرف القلب. وقتی گاف زیاد از دارد میبره میرد ده قلبت. چی که استادام ایشلانند با شیطان می‌شینیم. بگو که که استادام شده بگو یا الله، چیش هم بگو بسم الله که گفتی هم بخیوان الله الله, الله. بو تو نام الله در دا قلب داخل شد. تمام روز که شیطان دشمنی رو شروع کردیش. اگه شیطان رو بس قارشobat ها یک سانزات خب قسم دومش گناه به اعتبار مکان است. گناه به اعتبار مکان است که ما اماکن مقدسه داریم اگر یک دو نماز خواندن، یک رکات نماز وقتی که انسان در بیت الله شریف می یک لک درجه ثواب داره مطرسلی مبنیسیم یک لک درجه ثواب داره ولی متوجه باشی که اگر یک گناهی در این جه میکنی اون باید یک لک درجه درجهش بلندتر باشه پس وقتی که انسان در مسجد داخل میشن غب زدن دنیایی در بیرون و غب زدن دنیایی در داخل مسجد فرق داره دیگه ان المساجد لله فلا تعبدوا مع الله احد خداوند متعال که این مسجد لله یعنی مل، ملکت خداوند است تو در ملکت خداوند اداوناک و کس دیگه یره یگانه کی ده مسجد بر خود جای نماز انداخته این مسجد از آجی شیر آقا است این مسجد آجی خان آقا است این مسجد است صوفی قربان است این مسجد از فلانی ایست چه جای نمازا رو قطر انداختن این خانه خداست تو در خانه خدا اجاره گرفتی وقتی که به سر جای نماز شوشهبی قار است برادر اگه تو دین نمیفهمی برده و کنی نماز بخون برداو و چه تا جایاش سجدی تو در روز قیامت سرت شهادت بده یک جای نماز نخوان کسی که هر روز در یک جای نماز میخونه در مزید او اشتباه میکنه باید در هر کجای مزید در هر منطقه بخونی تا که قسمت ها زمین هر جای که سجده میکنی بر تو بالای تو شهادت بده اینه به می که این مزید خانه خداوند است در اینجا گناه هم بزرگتر است پس خندکی که آدم در مسجد میکنه فرق در نسبت خندکی که در بیرون میکنه آدم گپ دنیایی که آدم در دونی... مسجد میزنه نسبت به گپ دنیایی که در بیرون از مسجد آدم میزنه فرق میکنه گناهی که در مسجد میشه ای فرق میکنه نسبت به گناهی که اگر یک نفر میگه در مسجد گناه میکنه عرش خدای عزوجل در حرکت میه پس ما باید متوجه باشیم که با اماکن مقدسه به مو اندازی که مقدس است گناه هم در او هم جزا زیادتر است خب گناه قسمش به اعتبار ذاتی گناه است و اعتبار ذاتی گناه میگن که دو قسم است یکی ترک مامورات است یعنی ترک کردن چیزایی که به او امر شدیم و دوم انجام دادن منهیات است یعنی چیزی که نهی شدهیم او رو یکس انجام میدن قسم چهارم گناه به اعتبار بی‌ادبی انال وقتی که انسان گناه میکنه، در گناه خود فکر بکنه. بعضی گناه هاست که مستقیما به ادبی با خدای عزوجل است، مثل شرک. بعضی گناه هاست که به ادبی با رسول الله صلی الله علیه و سلام است، مسخره کردن پیغمبر، فکایی گفتن سر پیغمبر. بعضی گناه هاست که مثلا به احترامی با والدین است. انال و اعتبار به ادبی ها در مقابل اشخاص و زوات فرق میکنن. پس کسی که به ادبی در مقابل خداوند میکنه در ذات خداوند یا میه که خداوند پسر داره یا دختر داره یا شریک داره یا مانند داره این شرک است به ذات خداوند به ادبی در مقابل خداوند شد. شرک در صفات خداوند صفات مخلوق، مخلوقه مثل صفات خالق و یا صفات خالق مثل مخلوق فکر میکنه مثل چی در سوره اخلاص میخوانیم که الله therm خداوند بینیاض است سمادیا بنیازی بنیازی از چی؟ اداله اگر کس شرک میاره مشرکین چی میکردن؟ خدا رو فکر میکردن میگادن مثل دیگر رحبر ها و پاچه ها واره. وقتی که پیش دیگر رهبر میری، پیش دیگر رهبر میری، مجبور سی وقتی که پیش پادشاه یا رئیس جمهور یک کس میره پیش سرکرترش بره. پیش ماونش برم پیش وزیرش بره، پیش بادیگارش بره، پیش رئیس دفترش بره یا واسطه شون تا که پیش او رهبر برازم. مشرکه که خدا را مثل پاچای دیگه فکر میکنم میگم ما باید پیش خدا هم با واسطه ها پیش شون. از طریق بط از طریق فلانی از طریق چیزهای دیگر اما خداونده که خداوند بینیاز است بینیاز است از سکرتر رو، از رئیس دفتر و از بادیگارد و از وزید اذا علک عبادی عنی وقتی که بنده های ما در مورد ما پرسار میکردن فا اینی قریب ما با بنده خود بسیار نزدیک هستم پس مستقیماً یا الله بگو چرا با خط مستقیم که تو خداوند گفت بزن نه با خط منحنی که اول پیش فلانی باز از طریقه ای عقیده که اول پیش بود باز به خداوند هم ای عقیده بود پرستاست عقیده که پیش رهبر پیش پاپ و کشیش اول پیش از او بره باز او رو به خدا نزدیک بسازن ای عقیده مسیحیت است. عقیده اسلام عقیده است که با خداوند مستقیمن انسان ارتباط بگیرد. علما معلمین هستند، دین تشریح میکنن اما گناه کس را ایش عالمی میبخشیده نمیتونه از این خاطر انسان با خدای از ارتباط مستقیم داشته باشه به ادبی به ذات خداوند به ادبی به صفات خداوند و به ادبی به عبادت خداوند وقتی که ما یک عبادت رو برای یک مخلوق انجام بیدیم پس اون مخلوق ما در عبادت با خدا شریک ساختیم اینجا به ادبی به خداوند شد بعضی کساست نظر خدا به عبادت خدا به یک انسان میگیرند اینجا نظر عبادت هست نیست ولیوفو نزورکم نزوره هم هست نزوره هم ولیوفو نزوره هم پس باید نظرهای خدا چی کنن؟ و فواب کردند والا ما نظر گرفتیم به فلانی شخص ما نظر گرفتیم به فلانی شخصیت پاک ما نظر گرفتیم به فلانی بی بی ای در اسلام نیست در اسلام نظر به خدای عزوجل است چون نظر عبادت است و مامی که ایاک نعبد پس در عبادت خدا کسی رو شریک ساختن به عدبی به خداست در استعانت یاکن از تعریم خدای خود از تو کمک می خواهیم اینجا کسی از او کمک خواستن در حقیقت از مخلوقی بچه خواستن ضد صفات خداوند است که محی خداوند است ممیت خداوند است پس هیچ کسی نمیتونه برای انسان اولاد به توجه ذات خداوند متأثر ایگناها ای الی ها به اعتبار زوات فرق میکنن اگر ذات خدای عزوجل است پس گنو گناه, گناه شرک هیچ وقت بخشیده نمیشه اگر این به ادبی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم است اینا الی گناهی اگر کسی در دنیا توبه نکنه در روز قیامت به هیچ شرک بخشیده نمیشه چرا چون اینجا دشمنی ای گناهگار مستقیمن به عدبیش با خداوند است و کسی که با خداوند به عدبی میکنن بعضی کسا هستن که حتی به خداوند فکایی جور کردن میگم من مسلمان هستم علیه عزبالله در فکایی خود خدا را هم داخل میکنن اینجا باید ما و شما متوجه باشیم که هر به ادبی در مقابل خداوند گناهی بسیار خطرناک است احیان بی به ادبی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم میشه احیان به ادبی برای علماء میشه احیان به ادبی برای والدین میشه احیان به ادبی در مقابل بزرگاه میشه از این خاطر انسان باید اینجا با به اصابه و اعتبار به ادبی ها متوجه باشه قسم چهارم گناه و اعتبار اندازه هست که این علما گناه ها را تقسیم کردن به گناه های کبیره و گناه های سقیره در قسمت گناه های کبیره و سقیره علما دو نظر دارند. یک تاریفی هست که بعضی از علما میگن که گناه سقیره و کبیره را میگن لا صغیره معل اصرار ولا کبیرت معل استغفار گناه ها خود کلش معلوم است. لکن گناه صغیره کدام گناه را میگه؟ میگه گناه صغیره لا صغیرته مل اصرار. ولو که گناه سغیره باشه، خرد باشه، وقتی که دی انسان اصرار میکنه، از این خاطر میگیم که این گناه از بالله که از صغیره بچی موبدل میشن به میشه او روز یک کسی آمد، نفوسا در قسمت ریش شما چی نظر دارین؟ گفتیم که ریش اگر یک نفر ریش خود عروس کلم میکنه، پس این به حرام چون کل کردن ریش حرام است و ایره کل علماء ایچ کسی نمید که نگوست کل کردن ریش حلال است پس کل کردن ریش حرام است خب ولو ایره اگر گناهی سخیره بگیریم اگر انسان هر روز یا روز باد و دو روز بود اما اصرار میکنن لا صغیرت بایصبی تعریف لا صغیرت مع الاصرار پس بلاگه اگرقدر خرد باشه و خرد باشه و خود باشه و خود باشه میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله در یک دشت رفت اونجا وقت گرفتن گفتن چوب برید گفتم یه چوب, چوب دیگه منتقارش گفتین نمی هیزمکای خرد خرد پیدا بکنید برید در بدید خب مردم رفتن کلگی جمع کردن چوبک خرد و چوبک یکی از چوبکازون آوردن یک وقت یک کوت شد پیغمبرم خواستم هم یک درس بدم و تو دیدین گناه ها هم اینه قسم است در نظر نمیای خود ترکه خود ترکه خود ترکه یک وقت سعی کنی در روز قیامت که یک کوت گناه در پشترت روان است پشت کردی گناهی بزرگ و واو ما خیر چی گناهی گناهی یک خرد است گناهی که خرد است بسیاری کساس خورد گفته و خورد گفته خود گفته خودا خراب میکنن ولا خارجان ایجاب خالص قل... ایجاب به قدر چیز است خیرش مبارک باشه جان یکم همی... کوشش کو اگر یگانوس کل کدی یا گفت یک, یک دفعه کلام نکن یگان دفعه باشه والا وصابی خیر است چطور است خب دیگه دفعه والا آدمی ورسینی رخصوندن و این فیلم برداری کردن و خواهر گفت استاد یام قدر مهم نیست م... یک روز مرا دست دستم گفتم میگه یک نفر آمده بود خودم گفتم ما بسیار پهلوان هستم خدا خاطر ازی خدا شجاعت خدا نشان بده که پیران خدا میدان میکشا کلهگیر ببینن بغی شیر از دیگه شیر این رافیشی این نفر خال میزد گفتم بگیدم تختیق پشت من یک دونه عکس شعر دستم این نفر گفت خوب است من تا اگر عواصلا کنه بهت نه عواصلا میکنم خوی تختیق پشت خداک به نظیر گرفت یکم یک 4 5 سوزن زد اخ اخ اخ گفت کجای شده گفت کله گفت گفت اسکلش تیر شو خب از باز که خال خال خال خدا گفت گفی کجاست پای پیش شه گفت کمش ازی پای شه شام شامتر شو خو